اگر هیچ دلیل شرعی برای اثبات چشم زخم یا سحر یا کاشفیت از واقع بودن استخاره نداشته باشیم آیا کسیرن دیدن و شنیدن آثار آن در اطرافیان تواند سبب اعتقاد ما به حجیتش بشه یا نه؟ دیدن گاهی اشتقال بکنه در, در دید اشتقال ما ندیدیم تارا کسی هم نگی بده بگیم چشم خوردیم زدیم زمین. در استخاره چطور؟ مثلا مکرر افراد در جواب استخاره چیزایی بگن که انسان استخاره دو جوریه. یه وقت معمولیه یه وقت افراد خاص ما افراد خاص استخاره نیه کار دیگه میکنن خبر میدن از واقعیات استخار همینه نه از درون خبر میدن از آیده برای رفع تحیل خوبه اصلی دیگه نداره اونایی که اون کارهای دیگه رو میکنن مراجعه بهشون چقدر خوبه مثلا از علما هم اگه باشن. و هر حال دیگه باید بود برخلاف خلاف چیزی نگن برخلاف خلاف نگن ولی اینو اشتباه میکنن اون با در قالب مطالب مراجعه ولی مسئله دیگه هست یعنی درسته نه اینکه استقرار بیگه ای دیگه از, دیگه از, این راه دیگه از این جداست. چی که, <تصفح> <تصفح> ای که از راههای دیگه خبرو و غیرادی میده اینا هم باز احتمال خطا توش هستش دیگه. بله. راست از رو می درست نمیخواد.